سی و چارمین حدیث فرمودی رسول الله صلی الله علیه و سلم النار و جبار النار آتش جبر میکنه یعنی اون آتشی که ما به پا میسازیم آتشی که مثلا بالفرز من در باغ خودم آتشی رو به پا میکنم بادی میاد آتش از باغ من میره به باغ همسایه اون باغ همسایه میسوزونه ان میسوزه با اون آتشی که از باغ من بلند شد آیا اون همسایه بغل من یا منزل بغل من که آتشی از منزل من پریده به اون منزلش آیا میتونه من رو مؤاخظه بکنه خیر النار و جبار آتش جبر میکنه یعنی آتش یعنی ضمانتی رو به اون شخص نمیده یعنی مثلا الفرس من زامن اون آتش دیگه نیستم آتشی که الا اینکه مثلا من از عمد کسی رو تو آتش بندازم مثلا ولی من آتشی برپا کردم کسی اومد تو آتش افتاد چون آدم آتش رو که میبینه دیگه من معاخذه نمیشن در مقابل اون آتش نمیتونه شخص بیاد ادعا بکنه که تو مال منو تلف کردی آتش جواره اون چاهی که انسان در باغ خودش در منزل خودش کنده برای که آبی از اون استفاده بکنه کسی توش بیفته جواره و چیزهای دیگه که در شرع اومده انسان در مقابل اون کاری که اون چیزی که انجام میده و قصدش خیره نشر ماخذه نمیشه یعنی مثلا ولفرس میگم مثلا من آتشی که بپا کردم برای اینکه غذایی رو بپزم قسم شر نبود قسم نبودی که آتش رو بپا کنم که منزل همسایه بسوزه که یا باغ همسایه بسوزه اینجا من دیگه ماخذه نمیشم چون من قصدش نداشتم مثلا من هدفم این نبوده و خیلی از مسائل دیگه که شاید پیش بیاد و انسان زامنش نیست برق مثلا ما به جای آتش برق داریم شاید کابل برقی بیفته در منزل ما جوباره یا برق تو منزل ما آتش بگیره یا منزل ما آتش بگیره یا برقی از ما سبب بشه که مثلا برق منزل من مثلا دوزی اومد من تو منزل من پرید برقش گرفت جوباره چون من منزل خودم همه. حوزه استفاضیه منه این شخص اومده تو منزل من پریده و مرده